بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات بعد از كتاب النكاح مياد كتاب الجنايات قتل كردن و ازفيرو ناقص كردن قد كردن القاتل على ثلاثة عضو روبين قتل بر سنو مي يك عمد محس قتل عمد محز دو وخطأ محز خطاية قتل خطاية محز خالص سي وعمد خطأ قت قتل عمد خطأ شبه عمد بعده هذي كذا نرى تعريف مكونات فالعمد المحض هو قتل عمد محز أنسك أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ویقصد قتله بذلک قتل عمدی محض آن است که شخص امدی بزند کسی را به وسیلهای که غالبا اون وسیله میکشد و هدفش هم کشتن باشد با این زدن فیجب القود علیه در این نوع قتلیین قتل عمد محض قصاص بر جانی و بر قاتل واجب است یعنی حکمش قصاصه فا عفا عنه. خوب از این جمله ما میفهمیم که اولیای دم اولیای مقتول میتونن عفو بکنن یعنی قصاص نکنند فا عنه اگر عفو کردند از این قصاص وجبت دیتون مغلظة حالتون فیمال مال القاتل واجب میشه دیه مغلظه دیه سنگین حالتا فوری في مال القاتل از مال خود قاتل بله این این دیه مغلظه چه هست؟ جنوتت حضیحش میده والخطا والمحضو نوع دوم قتل قتل خطا هست قتل اشتباهی هست قتلی که از روی توضیحش میده این یرم یا علاشه این فیوسی براجلن فی مانند این که بزند تیری را به سمت چیزی و به شخصی برخورد کند میخواد کبوتری رو فرزن بزند خرگوشی رو بزند به شخصی برخورد کند فی و اون شخص را بکشد اینو میگن حتی فلا قواده علیه در قتل خطع محض بر زننده بر کشنده قصاص نیست اینجا قاتل خطعین کشته نمیشه قصاص گرفته نمیشه بل تجب علیه هدیتون مخففتون على آقلتی مؤجله في ثلاث سنین بلکه واجب میشه بر این شخص دیه مخففه اون هم بر عاقله هست بر خود قاتل نیست آقله که هستن یعنی اصبه جانی اصبه قاتل البته اصل و فرعش نه بلکه برادرانش و پسر اموهایش مدتدار هست این دیه فی ثلاث سنين در سه سال طی سه سال این دیه مخففه که عاقله اونو میپردازند پرداخت بشه آخر هر سال سجاش میکنند ها هر سال یک سلس رو در سه سال تموم میشه و عمدون خطا نوع بعدی قتل عمد خطا هست آهمون شبه عمد نامیده میشه ان یقصد ضربه بما لا یقتل غالبا فيموته. قصد کند زدن مقتول را به وسیله و عالهای که غالبا نمیکشد میخواد با چیزی که نمیکشد اونو بزند قصدیش بزند ولی با چیزی که غالبا نمیکشد فیموت اون بیچاره هم بمیرد فلا قود عليه اینجا اساسی بر این نوع قاتل شبه عمد نیست بل تجب دیت مغلظه علی العاقله بلکه دیه مغلظه دیه سنگین واجب میشه اون هم بر عاقله ببینید در عمد محض دیه مغلظه بود بر خود قاتل در شبه عمد دیه مغلظه هست بر عاقله هست در خطا دیه مخففه بود بر عاقله بود معجلتون فی ثلاث سنین این مغلظه که بر عاقله هست این بر برادرانش و بر پسر اهموهاش مدتدار هست عجلدار هست در طی سه سال طی سه سال اینو پرداخت کنند انواع قتل توضیح زیداد حالا فصل شرایط وجوب القصص شرط هاي واجب شدان قصاص جزد و شرائط وجوب القصاص اربعة شرط هاي واجب شدان قصاص شارط هستد يك دو ان يكون القاتل بالغا عاقلاً قاتل يك بالغ باشد دو عاقل باشد ديفانه نباشد سي الله يكون والدا للمقتول پدر مقتول نباشد ندار مقتول قصاص ندارد چهار و الا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رقه مقتول کمتر نباشد از قاتل به وسیله کفر یا به وسیله بردگی یعنی مقتول کمتر از قاتل نباشد اگر کمتر بود قصاصی نیست کافر بود یا برده بود چون در این صورت میگند خوب مقتول پایینتر هست از قاتل و تقتل الجماعتو بالواحدی و کشته میشمد یک گروه در مقابل یک نفر بله مسئله بعدی بعد از اینکه شرط شرطهای واجب شدن قصاصو گفت چارتا شرط مسئله دیگه ای مطرح میکنه با این اینکه یک گروه در مقابل یک نفر. سه نفر با هم شدن یک نفر رو کشتند بله. <تصفح> میگه یک گروه در مقابل یک نفر کشته میشه و كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس یجری بينهما في الاطراف. میگه هر دو شخصی که جاری میشه قصاص بین آنها در نفس جاری میشه بین اون دو نفر قصاص در اطراف یعنی چی؟ یعنی در واجب بودن قصاص در قطع اطراف دست دندان خلاص اعضا اعضایی که قصاص دارند، میگه شرط از در واجب بودن قصاص در قط کردن اطراف همون شروطی که در قصاصف نفس بودند بر این اساس زمانی که قط کننده ی طرف قط کننده ی عضو بچه بود یا دیوانه بود یا پدر قط شده بود پدر اون شخصی بود که عضوش قط شده بود یا ناقص پایین تر بود اونی که عضوش قد شده در این صورت قصاص وجود نداره پس این جمله معنیش همینه و کل شخصین جرال القصاص بین همه فیل نفس یجری بینه همه اطراف و هر دو شخصی که قصاص بین اون دوتا در نفس جاری میشه آه طبقه چار شرطی که خوندیم بینشون در اطراف هم جاری میشه طرف اومده دست یکی رو بریده دستش اینجا قصاص سرش میاد ولی با چه شرطی قطع کننده بالغ باشه عاقل باشه و والدش نباشه پدرش نباشه و ناقص تر از اونی که دستش قط شده نباشه پایین تر نباشه و شرایط وجوب القصاص فی الاطرافی بعد شرایط المذکورتی اثنانی و شرایط وجوب قصاص در اطراف در اعضا بعد از اون شرایطی که ذکر شد دوتا هستند یعنی بغیر از این شرط که ذکر شد دوتا شرط دیگه وجود داره در بحث قصاص در اطراف در اعضا قصاص در نفس داریم که شخص کشته میشه قصاص در اعضا داریم آه؟ این دوتا شرط چه هستند؟ الاشتراکو فی الاسم الخاص شرط اول که اون اوزفی که قات میشه در قصاص با در اسم خاص هم مشترک باشن ماننده اليوم نا باليوم نه. یعنی دست راست در مقابل دست راست قات میشه و اليسره چپ در مقابل چپ چون چپ و چپ در اسم خاص مشترکت راست و راست. این شرط اضافی در اطرافی این بود دو و الا یکون با احد الطرفين شلل. بله. شرط دوم اینه که عضو جانی و مجنی علیه و اونی که برش جنایت شده اونی که عضوی ازش قطع شده فلج نباشه. اگر دست قد کننده صحیح بود دستش اما دست قطع شده فلج بود. اینجا دیگه از قط کننده قصاص گرفته نمیشه چون دست اون سالم بوده قط کننده و دست این فلج است پس دو تا شرط آورده در اسم خاص با هم مشترک باشن راست به راست چپ به چپ دو در یکی از دو طرف در اون دو تا عضو فلجی نباشند وكل عضو عضو وَنْ اُخِذَ میگه هر عوض که گرفته شد از مفصل ففيه القصاص درون قصاص هست یعنی قصاص در اعضا زمانی میاد معنای سخن مصنف همین هست قصاص واجب مشه زمانی که عضو از مفصل قطع شد از مفصل قط شد نه از وسط بله ولا لا قصاص فی الجروح الا فی الموضحة و در و در زخم قصاصی نیست مگر در موضحه شکستگی سر اون شکستگی که استخان پیدا بشه استخان دیده بشه بله این قصاص داره بله وقت رو میبینیم. فاصلون بیانو الدیتی فاصل بعدی بیان کردن دیه هست و الدیه تو الى مغلظت و مخففه دیه گرفتن پول خون گرفتن بردونو هستی که مغلظه هست سنگین و مخففه سبا که قبلا اونجا خوندیم دي. فالمغلظتو دیه مغلظه که گفته بود از قتل عمد، مال, ش... مال قتل عمد دیه مغلزه بودو شبه عمد. باله. دیه مغلزه چقدر هست؟ 100 من الابل. 100 شطوره. فالمغلزه 100 من الابلی. دیه مغلزه ست شطوره حقه. سی تا باشند. یعنی ماده شطوری که سه سالش تکمیل شده وارد سال چارم شده. و ثلاثون جزاه. سی تا باشند. ماده شطوری که چار سال رو تکمیر کرده وارد سال پنجم شده و اربعون خلیفتن فی بطونی ها و چهل تا که حامله باشند بچه در شکم داشته باشند این دیا یه است سی تا حقه سی تا جزاه چهل تا که در شکم فرزند داره و المخففتو اما ديه مخففة شهست مئة من العبل سات شو تريين هم باسان ولي اشرون حقه انجا حقه يعني اوني سالش شده وارده صالي چارم شده بيست جازاء يعني اوني كس چار صالي شده وارده صالي شده وعشرون بين تلابون بیست حقه، بیست جزاء، بیست yani ابن الابون. یعنی اون ماده که دو سالش تکمیل شده و وارد سال سوم شده. و اشرفون ابن لبون و بیست ابن لبون یعنی بیست شتر نر که دو سالش تکمیل شده و وارد سال سوم شده. و بنت مخاض و بنت مخاص یعنی yani ماده شطوری که یک سالش تکمیل هست تو وارد سال دوم شده بچه شطوری که یک سالش تکمیل شده و وارد سال دوم شده این دیه مخففه بود فنعدمت الابل اگر شطور گیر نیامد انتقل الى قیمتها منتقل میشه به قیمتش قیمتش پرداخت بشه وقيل ينتقلوا الى الفی دینار اگر شطور گیر نیومد قیمتاشون پرداخته بشه هر چقدر بود طبق وقیله و گفته شده یعنی در مذهب قدیم یونتقلو الى الفی دینار شطور گیر نیومد هزار دینار بده اگر از اون شخص از اهل دینار بود ها؟ هزار دینار هم کتاب من وزن آورده چهار هزار و و سی و یک گرم چار کیلو 231 و, و یک گرم او اثنی عشر الف درهم یا دوازده هزار درهم بده اگر از اهل درهم بود وزن دوازده هزار درهم چقدره؟ سیو هفتصفر پانسد گرام. این البته در مخففه بود. یعنی این هزار دینار رو دوازده هزار درهم یا دوازده هزار درهم. و این غل لذت، اما اگر غلیزه بود، دیه زیاد علیه الثلث یک سوم برشون اضافه میشه. یعنی در خفیفه میداد هزار دینار. ولی در غلیظه باید بده هزار و سیصد و سه سی سی دینار و یک سوم دینار اگر از اصحاب دی دینار بود و اگر از اصحاب درهم بود اونجا بود که دوازده هزار درهم اینجا باید سلس برش اضافه بشه که میشه شانزده هزار دیره شانزده هزار دیره در غلیزه بده بله تا منجا کافیست